اللهم من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صل الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين الله تدايمه على عدايهم اجمعين اللهم لسفن جميع المشتدين رحم و يا رحم الرحيم عرض چون این روایت عبالقاسم سیغل در باب جلد میته داره یک ارزش خاص به خودش خودشه این روی مقدار مفصلتر متعرض میشیم این از کتاب مصباح الفقاهه که دیروز خوندیم از این روز داریم مکاسه محرمه فکر میکنم چاپ دیگه نشده نیست چاپم قبصه تقومه چاپ شده؟ محسطه؟ مفصل عوض شده حواشی هم؟ نه چون این بعضی از این حواشیش خیبی دقیق نیست الاری. ندارم اون چاپ جد من علایه من از همین چاپ معلوف مکاسر محرمه صفحه جلد یک صفحه 49 یه مردار یه عبارتی ایشان خونده میشه به خاطر بعضی از نکاتی که هست از کردیم مرحوم استاد کلو مرتبه منابشه کرده مسئله تقیه رو این دوبار جواب داده و قبول نکرده همه باری خیلیه و بالاخیر به این نتیجه رسیدن که روایت بد نیست الا این که ضعیف. زعیف مرحوم استاد در این کتاب مکاسه محرم ایشان به خلاف مرحوم های خوری درست است سندهش من بیشترم در همینجه جهت. هم تعبیر ایشان این ممن ها صحیح هست و محمد ابن ایسا ابن عبید ان ابل قاسم سیغل و ولدهی کشان تعبیر به سعیه فرمیده قال کتب و ادر خب مادام باید در هر حال روات خونده بشه فیلن هم وسائل این جل هم نیست حالا از تزویر تحذیب مهم بکنن اما مخت روات در حال بکنیم قال در شرح تحذیب مراز الاخبار برده قالیان محمد ابن ایسا بعضی ها گرفتن ابو القاسم سیغن اخو باشه اول قاسم سیغل به اصطلاح زمیر قاله به خود اول قاسم سیغل برگرده علایه حاله محمد ابن ایسا ابن عبید اول قاسم سیغل و و یعنی دو احتمال داده شده یکی اینکه که قاله برگرده به محمد ابن ایسا محمد ابن ایسا که معروف از بیختینی ایشان گفت که کتبو یعنی اون ابوالقاسم فرزندانش ابوالقاسم سیفیه یک احتمال هم داره که خالد به خود ابوالقاسم برگرده قال ابوالقاسم کتبو بخ کتبو یعنی مراد خودشو فرزندانش یا کتبو اولادش مثلا ال رجل جعلنا الله فداک عسکرین در ملاز الاخبار آمده که رجل احتمالاً حضرت مهدی باش یا حضرت عسکری یا حضرت هادی این شالا خواهد آمد که از حادیش در اولا جعلن الله و فدات نا از این هم معلوم میشه که اینها گروهی بودن یعنی اگر هم مثلا دکانی مغازهی کارگاهی مسنعی معملی و قلعه نارو داشتن افرادی بودن که یک نفر نبوده مثلا پدر با پسرها پر این نفر چیش نکنید یک کار سنگین اقتصادی بوده نعمل و سیوف ما شمشیر درست میکنه این کلمه نعمل و سیوف منچه این شده که شیخ دیروس خون به عباره شده تصور کرده چون گفت نعمل و سیوف کار ما شمشیره پس چرا سؤال از غلاف کرده که از پوست میتر هست لذابشون برموم شیخ این رو فهمیدن که درست پوست میتر رو غلاف درست شده وقتی میفروشیم شمشیر میفروشیم یکی از های شیخ این بود شیخ قدس الله نسته که اصلا اون غلاف که از پوست میته هست این در معامله واقع نمیشه این مبیع نیست قرینه شیخ ولی مثلا مطلب میخواب قرینه رو از کنم این کلمه اناقام ای و نعمل و سروف ما کارمون ساخته شمشیره خب میگه کارمون ساخته شمشیر تا توی غلاف داره پس اگر بناس غلاف از جلده میته باشه دقیقا فرموندید این غلافی که از جلد میتست این چون گفته نعمل و سیوف این به طبع بوده به اصاله مورد نظر نبوده نه خود غلاف رو به تنهایی میفروختن و نه غلاف رو با شمشیر به جوری که مقداری به اضاع غلاف مقداری به اضاع شمشیر نه از کلمه نعمل و سیوف یعنی کار ما شمشیر ساختن پس غلاف مطمئه نظر نیست هم غلاف با شمشیر به فروش میره به عنوان قلاف نیست با عنوان زمی هم نیست با عنوان فروش شمشیر پس شمشیر رو ما داریم می نه قلاف در این مکاسه مهمه فرموم استاد اشاره در همین جا از اینجا مناخشه رو شروع میکنه ایشون میگه ان نعمل و سیوف قوم و نعمل و سیوف این درست باشه این شاید انا قوم و نقمد و سیوف این نعمل اون معنا نداره که از غلاب سوال بکنه به قطع پس این از امون اول حدیث معنی شد که اختلاف با دو طرز تفکر سر متن روایته اگر شیخ اونجور معنا کرده چون مطن رواید نعمل و سیوفه ایشان خواستن حقیقت با این مقدمه جواب شیخ را هم بدن که این معنا نعمل و سیوف این انا نغمد و سیوف چمشیرها رو غلاف میکنید یعنی قلاف شمشی درست میکنیم چون سوالی که داره میکنه از باب به اصطلاح مسئله قلافه که این اول نقطه شو از همینجو بگیم لیتت لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها منشأ زندگی و یا خید فروشی کسی این. و نحن مزترون الیها. ما به این تجارت ظاهرن به این تجارت به این سیوف مزترمیم که مورد اعتراف و اورفی مثلا ما کارمون همین دیگه غیر از این بلد نیستیم و اگر برام کار کارو بکنیم کار دیگه نداریم و انما علاجونا علاج به کسر این مساله دوم با مفاعله است معالجتنا علاج یعنی همونی که ما امروز در اصطلاح روز میگیم صنعت به اصطلاح تصرف انسان در یک چیز در یک مواد اولیه که اون قابل استفاده بکنه این اصطلاحات امروز میگن صنعت یا تکنولوژی یا صنعت اصاف عارفين شما چوب درخت رو می‌گیرین، اون رو باش تشریح می‌کنین، تبدیل به ورقش می‌کنه. این میگن صنعت. در اصطلاح اقتصادی امروز کار رو وقتی تقسیم می‌کنن، یعنی بناش اقتصادی رو، منبع اقتصادی رو تقسیم می‌کنن، یا میگن صنعت. سرعت یعنی این، یا سرویس یا خدمات مثل تاکسیرانی و تاکسی تلفنی و این چیزا. این میگه علاج. اینو در لغت عربی علاج میگن. یعنی کار ما کارساز ما کار پردازی ما بزرگز فارسی بخیم بگیم با پوست میته است و بغال و همیر همیر احلیه مراد از اولاغ اهلی در مقابل اولاغ وحشی یا به اقراض دیگر در مقابل گوره پر اولاغ های خانگی به اولاغ های احلی وله همیر اهلیه، لا یجوز فی اعمالنا در این کار ما غیر از اینها جواز نداره جواز در اینجا نه به معنای تکلیفی است نه به معنای وضعی این جواز در اینجا معنی تکلیمیه یعنی ما غیر از این راهی نداریم پوست رو باید از همین بسازیم دیگه راه دیگه نداریم پوست مثلا غلاف شمشیر رو که میخواد بسازیم این اقماد یا این غلاف ها رو باید از پوست همین میته بسازیم لا ی جوزو فی اعمالنا غیروها لنا، این فا یهلو به حضف سواله افا یهل فا حل یهل لنا عملها ارز کردم جوزم داده شد سوال اول ایشان حضرت ما عبالقاسمه سه قلوه ایش را ارز کرد درست نمیشنسیم اما انصافا از نامه هاشون اینش آدم همچین مثلا یه کاسب مهض بازاری نبوده اهل اطلاع بوده ظرافت مطلب داره مطالبش خیلی لطیف سوال کرده مثلا فیحه‌های لولناها عملها این بحث اول خود عمله. مثلا این عمل جایزه، یعنی برخورد با میته، گوشت پوست میته رو بگیریم، آشکاشش بکنیم، ببریمش اندازه بگیریم، بدوزیمش، خود این عمل جایزه یا نه؟ یا به عبارتی که ما الان متعارف داریم، میخواد سوال بکنه، انتفاع به پوست میته جایزه یا نه؟ سوال اول انتفاع. بعد ها و بی آها این سؤال دومه. آیا خرید و فروشی معنی میشه که ایشان نصم الله بوده یا نیم چم بوده؟ سوال اول، انتفاع سوال دوم خرید و فروشه. آیا خرید و فروشی جایزه؟ یعنی کاملا نشون میده که ایشان حواسش جمع بوده از چه نقطه‌ای سوال بود؟ 3 و نص به ایدینا و سیابنا و نحن نصلی لیفی سیا بنا. ظاهرا باب و نهنو با و حالیه باشه، اتمه سوال باشه. میخواد از خود مسته به ایدی سوال بخونه چون مسته به ایدی همون عملوها هم کافی بود درش سوال سوال از مسته به ایدیست به هر حال ظاهرن مسئله نجاست رو مطرح میکنه ما دست میزنیم و با لباس هامون و نحن و نسلی در اون لباس ها نماز بخونیم احتمال داره دو تا سوال باشه. یکی تهار از نجاست این پوست های میته یکی هم یه سلام ممکنه از هر حال سوال این مال کلام مانعیت رو در به اصطلاح ارذ نجاست گرفته. این نجاست یک مطلب، مانعیت یک مطلب یا در طولش گرفته. احتمال هم داره در طول گرفته. یعنی حالا اگر نجس شد مثلا در مجثنج خون چون میدونید که مانعیت با نجاست تلازم ندارد. این نیست که همیشه در طول باشه. مثل موی گوروه پات هست اما مانعیت داره. مانعیت مسابقه با تساویی با نجاست نداره اما ایشون به هر حال ظاهرم نحن و نسلیفی سیابنا سوال از مانعیت هم کرده چون مسته ها به دینا و سیابنا داره ممکنه این مانعیت رو مستقلن سوال کرده ممکنه مانعیت رو در طول نجاست پس یا مانعیت در عرض نجاسته اگر در عرض نجاست باشه واب رو اصطنافیه بگیریم بهتره و نحن و سیابنا اما اگر در طولش باشه واو حالیه بگیریم چون حالا که ما نقص سیاب میکنیم لباسای ما به این میخوره پس نجس میشه لباسای ما حالا که لباسای ما نجس شد مانع نمازه و نمازلی فی سیابنا این تا اینجا سوال این نشون میده که انصافا خود مردیه پخته یه. انصافا حققا یه گو یه انسان آهنگر شمشیرساز و کارش کاری هم نیست که خیلی با فرهنگ اجتماعی یعنی فرهنگ دینی توش باشه علایه حاله بعد فرموده و نحنو محتاجون الى جوابه که به مسئله این دیگه تأکید است بر امام که حتما شما و جواب ما رو بدیم به ضرورت ما فکرت به علیه السلام حضرت فرمود اجعله فو سلام از این چند تا سؤال امام با یک ذرافتی فقط آخر رو جاهد دادن که بعده مانعیت داره حالا یا فقط مانعیته یا در حقیقت اضافه بر مانعیت نجاست هم هست این رو ما بهش میگیم تقیه یا تقیه تعبیری ما دو جور تقیه داریم یه جور تقیه است که فصل مثلا فصل عمار یاسر کلمه کفر رو گفت تقربا برای نجات از کف یه دفعه نه اصلا خود کلمه تعبیر تعبیری است که میشه عوض کرد و همونطور که در یک رواست داره اینا لنغول کلمه ولنا منها سبعون مخرجا هفتاد راه میشه پوجیهش بکنید و در این حال در یک رواست دیگه داره اینا لنغول کلمه حتی یعرف معاریز کلامنا این معاریز داره باب تعارضه معاریز از همون ماده تعارضه مقاسم کلامنا این م... بعضی از مشاعر همون شاید اینجوری است که ما روایت متعارضه ظاهرا معراض مراد روایت متعارضه نیست مراد اون نکته های روایتی اون ظرافت های روایت یک به اصطلاح بگیم گوشه زد دد. گوشه زدن به فارسی در خود متولل تو بخش سومش ظاهرا تو بدیع یکی از صنایع بدیعی رو تعریض گرفت تعریض همونجاست گوشه زدن از این اون تعریض در متولل یکیه در خود بلاغت در بخش سومش که بخش بدیع باشه یکی از صنایع ادبی رو تعریظ میرافتن تعریظ یعنی گوش زدن، کنایه زدن این رو در عربی بهش میگن ایلیاکهعنی بسمی یا جاره من با تو صحبت میکنم ما هم سه تو باش به در میگن دیوار گوشخره به اصطلاح فارسی این اصطلاح فارسی هم واژه اینو هم بش میگن تعریض به معراج معاریز یا تعریز یا معراج اون است که یک ظاهری داره اما اگر انسان دقت بکنه بقیه هم در میگن. مثلا این چون سوال کرد یه هل لنا عمله ها یه هل لنا به آها شراعه ها یه هل ها به ایدین ها و سیابه ها و نحن نسلی الان فقهای های ما منجوله های خوبی مرموم استاد و ایشان در اینجا همه رو این نقصه رفتن که از این روایت در میاد که امام فرموده اجعال صوب و سالات یعنی مانعیت نماز داره پس معناش اینه که اون دوتا اجبال نداره سیاهی برنا عمله ها این کار جایزه بله جایزه به اشراعش درسته بله درسته چون امام از اون دوتا هیچ نقصه نقرمودن سکوت کردن سکوت امام از اون دوتا به معنای تقریره مرحوم شیخ هم همون اشکالی که بیروز از مرحوم استاد قدرتش مورده ایشون هم بیارن عباد شیخه شیخ میگه این تقریر خیلی واضح نیست این تقریر در اینجا اولا تقریدش برای سکوت امامه فقط فرمود فرمون اجال صحب از اونجا جا این تقرید ممکنه اصلا بگه امام به عکس سکوت کرده که مقام تقییه باشه نیم خود چیزی بگه و به خصوص چون مکاتبه هست اگر کلامه در حضور بود بعده مکاتبه هست بیتر از هم نوشته می‌گیرن که آ شما بهش گیرین یعنی نوشتین که با جلوده میته نمیشه کاری کرد. این الان سلطان خلیفه هر موقعی المو... یعنی همشون در جلوده میته استفاده می‌شه. چون در باگی استفاده می‌کرد دیگه. و امام دیگه نمی‌تونه در موقع انکار بکنه. اونا چه امامی بنا بر تصور ما که حضرت هادی باشه، چون حضرت هادی در صاغرا تحت نظر بودن در منزل بهفره هر خدا زندان رسمی نبودن. اما ایشان در منزل میدن و ملاقات شیعه رفت آمده شیعه کاملا کنترل بود و نیمی آمدن و بیشترین مراجعه ایران که شیعه داشتن با ایشان توسط وکیل معروف ایشان ابو علی ابن راشد حسن راشد بغدادی ایشان بسیار مرد بزرگوار و جلیلغرد و عظیم و شنیست و در بغداد بود امام در اون رخ در سامر را بودن امام حادیث بله در س و یک تحت نظر بودن یه مقدار از این احکام به صورت توقیه آتس با امام مهادی مال همینه اصلا گاهی در بعضی از روایات این هم من توضیحا ارزه حتی از سامر را در زمان از تحادی به ناحیه مقدسه شده. الان در اصطلاح ماها ناحیه مقدس مقدسه مروط الله میدونیم همین زیارت ناحیه معروف همین زیارت که سید تابوس برده مرحوم استاد ادهی ا رجالیون حتی به مناسبت یا از تراژم، اشخاصی رو که از مهدی دی به و اسناد در زیارت ناهی سلام بر شده، در این زیارت ناهی زیک شده، همین زیارت ناهی معروف این در حقیقت ملاقات بیمه دی نیست، فقط یک شده، چون تاریخ روایت این طوره، فصل هم منم ناهیت المقدسه، پیروج بالندارج یا نه 252 یا 3، اگر این تاریخ درست باشه، زمان عصر هاضی است، ما از کجا این زیارت ناهی و مقدس معروفه این مال حضرت حدیث حقیقتا فکر الان در الفن ما معروف شده که زیارت دغیت الله مثل امام این اینجور زیارت کردن اگر این روایت سندش معتبر باشه سندش تاریخی ثرگی گیر داره اما خب که زیارت هست این سند قبول میشه تاریخی که داره اگر فراموش نکرده باشه از 252 تا 253 این دوتا اصلا رفتی بحث رو شد 255 هزه وفات است که بعد امام اسکریه تا ده 260 که وفات امام اسکریه و امامت برقیت الله صلوات الله و سلام محمد علایه حادم خوب دقیقه فرمایی مرحوم شیخ حرف شه اینه این تغییر اصلا ظاهر نیست هیچ امام رجیم دو مقلب نگفت بعدم در این جور چیزها ارز کردم چون در سامر را بود نوشته های اصحاب داشتن توسط مرحوم حسن بن راشد من یک وقتی کردم از کلام ان شاءالله اگه فرصت بشه بشه که از این مکاسب بحثارو یه بحثی راجع به مرجعیت هر خصوص مرحوم امطحری هم خدا رحمتشون ایشان نوشته و از بیان نوشتن که ما نمی‌دونیم مرجع بشی این به معنی که الان ما داریم که مردم به اونها مراجعه این ریشهش از کجا در شیعه میاد میشه راست میگه واقعا کار طوری مشکلیه ریشهش از هر حسن راشدیه اولین کسی که ما در اون اون مرجع اینجوری که مردم بهش مراجعه میکردن و وجوهات هم پیش اون می‌بردن و اهمام هم نبود و به امر امام بود حتمی راشدین ایشان وکیل تام درست مثل یک مرجعی که الان ما شبونه مرجع یاد بریم همینشون رو حسب راشد دامان امام هادی ها داشت شیعیان به بغداد می‌موندن ایشون در بغداد ساکن بغداد بود بغداد نمی‌اومدن و اموال رو به ایشان میدادن سوال و جواب و چه مرجع, مرجع این اولین چیزیه که ما در شیعه مثلا زراره این حالت نداریم میخوام خب این نکته رو عرض و اون جلالت شأنش یا مثلا بزنتی زمان عزادرزا یا صفمان زمان عزادرزای حسین سعید یا علی بن مذهبی که وکیل هستن حضرت همشون نوکرای حضرتن اما این شن مبسوط الیدی رو که اینطور حالاتی باشه که واقعا نائب مناب امام حسابش بکنه چون امام در سامرا در زیر به نظر شدید بوده کارها به همین مرحوم ابو علی ابن راشد، جایی بهش ابو علی ابن راشد میگن، جایی بهش ابن راشد میگن، روی حسن راشد میگن، بسیار مرد بزرگواری، بعد ها هم ابن اولاد اون خلیفه، خلیفه که اون هم خلیفه خلیفه نمیشن. یکی از اون حکام وقتی که در عراقو در اون زمان در بغداد یا سامرا بود، اسمش یادم رفته. مرحوم حسن راشد با دو نفر از بزرگان شیعه رو خرسه رو در دجله قرار شهید میشه. اسم ایشان کم شیدی ایشان مرد بسیار بزرگ بار و جای به قلب عظیمشن و روایات ایشان ایک شعنی داره اینشالله اگر تو روایات آینده جای پیش آمد من توضیحات بیشتری رو عرف میکنم پس این مطلب رو الان در دارید چه در بحث فقیهی ذراحت داره بحث روایات و معاریز کلام مثلا مربوم شیخ میگه به این روایات نبیشیم به این تقییز هم از در کنم اون مرحوم استاد در نسوال فقال ایشون هم در اینجا میگن میشه تنسو کن امام تغییر کرد. کردن تغییر چی دو تا بحث اول یک یهل لنا ها. بله اونجا هم ندازن دو شراؤها و بیعاها بازم جاهم ندازن فقط سومی و مس مصح... ها به ایدینا و تیابنا و نحن و نسلیفی سیابنا امام اینجا بمدن اج الفا و برستالات اج الفا فوقاً نمازنا خب این معناش اینه که در اونجا میشه نماز خون. پس برای میشه همین یکی مشکل داره. این یک طرفه از حالا ممکن است بگیم نه. این یک فنیه که اذه از ما کرده. از کتاب فلسبر هم فهم فهمیدن. ممکن است بگیم نه. امام با یک ظرافتی رو جواب دادن. اما مساله اجل صبند الصلاه این مبنا است بر مبنی است این نکته که ما الان در ذهنیت ما هست. که مانعیت غیر از نجاستیه الان ما مانعیت رو مساوی با نجاست نمی‌ذاریم امام جوابی که داده از مانعیت جواب داده نه از نجاست مثلا نجاست رو ما یعنی ممکن است این کتاب به دست سلطان بیفته نامه حزر میفهمد من گفتم خب خوبه انسان دلاخره شما میگی میته با, با دباغي پاک میشه خیلی خوب پاک میشه در هر حال این خوبه که آدم با این لباس و رو پاکم باشه نماز نخونه که نداره خصوصاً حالا اینه من بعد بود امروز بخونم زیاد نشد فرده انشاءالله خصوصاً که خود اهل سنت روایت دارن در زیل آهی مبارکی حالا هم نگاه روزن و فقل نعلی اینکه المقدس تو روایت خود اهل سنت دارم ما هم داریم ما هم داریم که این نعلی نه حضرت موسی از پوست میته بود اولاغ میته به اصطلاح مثلا خود پوست اون پوستی که روی به اصطلاح کفش اعزت بود پوست یعنی چرمی که روی کفش اعزت بود از پوست اولاغ میته بود ولی زا مثلا از, این، از همون قسم استفاده کردن که انتفاع اشکال ندارد از موسو پوچیده بود اما وقتی وارد تور سینا شد اما اما سخلا نهده اینو خود سنیام دارن ما هم داریم البته ما متعارض هم داریم ما در هم داریم که در یکی گیت تشریحی داریم مهدی زش ازدواجشانو بیخودی می‌میل باب که هر گوشی داریم. حالا چون ما داریم بدیم جلوگانه بخونم اینشانه شهرشون اینجا. حالا ممکن است مثلا برفرض هم این نامه در اختیار سلطه قرار بگیره ما لحظه هادی سلام ولی ازدواجمون بلخو بگشون و میگیم فکر نکنی که به لواطس مقدس تو آن جلد بود. حالا مشکل نداره ما میگیم مشکل شما میگیم جلد می‌تواند با دنبالی پاک میشه خیلی خوب پاک میشه. ان هم حضرت موسی پوست غیر دباغي پوشیده باشه هر که با پوست غیر دباغي نمیشه بسیار مطلب مستبعدیه پس دباغي بوده مع ازالک در وقت تقرب الله و دخول در طور سینا معمور شد که اون کفش رو بکنه به خاطر اینکه پوست میته بود پس حضرت یک تعبیه کردن اجل صواب له سلام شد ممکن است بگن این منافات هم با اون روایتی که شما از تهرانندر نقل کردید که ایما احاب دو بقیقه فقط تهور ندارم اما ممکن است حضرت هم مراد من اجال صوبند استالات به خاطر نجاستشه من گفتم اجال صوبند استالات چون نجسته نه مانعیم چون در بحث خود رواتم باتم دو احتمال هست یکی مانعیم در عرض نجاست یکی مانعیم در طول نجاست چون نجسته مانعه حالا اگه حضرت همون شنم ببینید این معنی طبیعی تعبیریه حضرت سمان من گفتم اجعال صوبند سلال به خاطر اینکه که اون نجسه حالا تو به ذهن چی رسیده به خاطر مانعیت من نجاسه چون این روایت هر دور احتمال داره یکی اینکه که ن... مانعیت در طولش باشه چون نجسه مانعه یکی که در عرضش باشه هم نجسه هم مانعه دو تا نکته شد اگر شما در طول گرسید پس نجسه اجعال صوبند سلال چون نجسه امسی پرمون شیخ انصال این شرح نده حالا بنده کلام نه نتیجه شرح کلام شیخ اجهال صوبنده صلاف معناش اینه که این لباس نجسه چرا؟ چون اینم دیگه باقصه خل... نعلیه کردیست اون خودش از پوست میته بود که میته نیست این محفوظ این اینه که لباسش به میته خورده مسته اینجا نگفته من از اون پوست می پوشم پس اگر خوب دقت بشه نظر امام این است که مانعیتش به خاطر نجاسته اگر مانعیت به خاطر نجاست شد پس احسن هره دقیق زرافت کار دقیق کردی اگر مانعیت این معنای تقییه در یک تقیی در... جوری امام تحبیر کرده دست هر بشری بردی یک جوری ترمه نال نقولم کلمه و آمنه ها سبونم اخراجم پس اگر مانعیت از نجاست آمد یعنی چی؟ پس اونی که شما نقل کردیم رسول ای امام این دوبله فقط تصور قبول اون نظریه. شاید فقط تصور نباید لباس نجیس می کرد، اگر لباس نجیس می شد نباید در نماز عرض می شد. مانعیت نییاد پس در حقیقت از امام الله علیه با یک تعبیر خیلی لطیفی کل منها تابون مخرجن. که میگردم اینقدر این تعبیر زدیه که این بزرگان ما گفتم نخیر دوبله تکرارش هم اشکال نداره. اون حضرات سوالداری میخوان با این مطلب بگن، با این مطلب بپرسن که آقا نه عملش درسته، نه خیر و درسته. موجه نجاست در میشه مانع نماز هست. اونم آخرش گفتن که دو ملازمه در بیارم. پس تمام زرافت حدیث لوچه شد ان زرافت حدیث اینه که این اجعل سبب للصلات مانعیت در عرض نجاست یا در طول نجاست. خود سوال و جواب هر دو احتمال داره این که مرحوم استاد در مکاسب محرم مرحوم آی خویی در بس با فقار هر دوشون تقریر رو قبول کردن چون مانعیت رو در عرض نجاست گرفته درست هم ما الان مانعیت در عرض نجاست میگیریم فرصفی موی گربه نجاست نیست اما مانع هست مالاکه لحمو نجاست نداره اما مانعیت داریم اینا روی این ذهنیت زمان ما، ذهنیت فقهی زمان ما خوب دقت بکنید. روی این ذهنیت اجل صبند Salat یعنی چه معنی یاد داره؟ مانعیات هم که با نجاست ملازمه نداره، ممکن مانع باشه، اینکه اصلا نباشه. دیگه قطعاً اگر با نجاست ملازمه داشته باشه، با خلوفش هم ملازمه نداره. اون دیگه به طریق اولا با اونجا ملازمه نداره. پس بنابراین اگر ما بعد از این شد این مطلب رو من درست اینجرا توضیح بدم، ذواتیشون نبونده. من در از این توضیح خوب دقت بکنید آره ان شاءالله براتون واضحه ما هدفمون فقط این روایت واحده نیست این یک منهجی در روایات اهل بیت اومده یک مشکل کلی است. که اهل بیت سلام الله علیهم این گایوغات یک تعابری کردن که حتی ممکن است بزرگان اثر ما یک جو فهمیدن که دارن خوب درش تامل میکنه میگه نه این تقریر توش نداره شیخ انصاری اشکال کرده گفته این تقریر واضح نیست خوب دقت کنید میگه این تقریر واضح نیست خصوصا که این مکاتبه است. لیکن ما با این تقریری که ما از کردیم نه اینکه که نیست امام از اونا جواب داده باشن شد هم از عمل جواب داده هم از خیل و فروش جواب داده هم از مستستیاب و عیدی جواب داده از همه جواب داده اما با یک تعبیری که اگر این نامه در اختیار سلطه هم قرار بگیره هیچ کار نمیتونم بکنه یک که انا لنقولوا کلمه و من اس منها 70 وخر جواب حالا اگر این ترتیبی که من عرض کردم خونده بشه این که امام از هر چه جواب داد از هر چهار تا احتمال جواب بده با اون اجل صوبند سلام فقط امام میگه خب اجل صوبت چون در اینجا خود جلد که نیست نمیخواد تو جلد نماز بخونه مس او شده پس حالا که میگه لباسه تا عوض بکن این باید منشه اشتی باشه نجاست باشه اونی که ملازمه نیست اون که ملازم به این مانعیت و نجازت نیست مثل موی گربه که ملازمه نداره مو پاکه اما مانعیت داره اما محفوظ اینه که لباس شما که پاک شده نماست که جایز بوده پس چرا الان نماز نخوند؟ چون نجسه اینجا تصور مثل موی گربه نگید در این ظرافت خب، کار دقیق کردی؟ پس این کثباری که الان همه این آقایی نوشتن که امام از اون دو تا جواب نداده به تغییر حدش میکنه نه خیلی روشن تو که امام جواب داده آه نه کشم به عکس میشه بله چون اونا هم که میگفتن جلد میت درسته چون یه تورو به دوان پاس میشه و ملازمه بین این ها سابقا مفصل مسیح شما وقتشیر میمیادین در توضیح دیم در اجواء سنی ها که مسلم بوده که به این ملازمه است پیش اجواء ما هم در اجواء فقیه ما از قرن چاران به بعد چرا این ملازمه بوده زمان صدور روایت روشنید دقت فر بودید اگر روایت تو حفل و گل عظیم همه صادق سابل باشید چرا چون تو این روایت هم ملازمه هست به نجاسه رو حرمت به پس بنابراین ا باعث نمی‌خواستم امروز این شرح رو واسه بگم می‌خواستم فردا بگم بعد از نقد کلماته واسه دیگه‌ که رسیدیم توضیحش ببینیم یک روایت واحد رو میشه دو جور مختلف معنا کرد یه بحثی هم الان به نام اصطلاح مزاودی هرمونوفی ادعی از غربی ها منکر دلالت شدن این جهار گیر کردن میان پس فرضش اینکه دلالت چیزی نیست چون شما این روایت رو به دو جور متناقض معنا می‌کنید پس رابطه به رابطه معنا نه با چون دو تا معنای متناظر این مطلب رو باطل مطلبی از کلامشه این مطلب این است که ائمه علیهم السلام یک ظروف تغییه داشتن مجبور بودند کلمات رو بهجور خیلی ظرافته که هم حکملار الله هم بگن هم در تاویذ در اختیار حکومت نباشه اون چیز داشت مثلا رو خلاص سوال مالی عوام جواب که خب تصادفاً خود ایشان خود این آقا در همین کتاب شما استاد یه روایتی دیگری آورده در صفحه بعداً صفحه 40 هست صفحه 50 این امروز منم می‌خواستم بخونم چون خود ایشان آورده من از تهذیب آوردم اما شما از خود کتاب می‌تونید بخونید ببینید باز یه روایت دیگه محمد بن ایسا بن عبدالقاسم سیغرل قال کتب تو الی که باز هم امام حدیث انی رجل سیغرل اشتر سیوف و ابی آهامن از سلطان معلوم شد این آقای فردا عادی نبوده این از دستگاه ساختن یا خدفروش شمشی در جای آلی را شده برای سلطان بله سلطان دقیق برمودید اینی رجل سیغل اشتر سیوف و ابی آهامن از سلطان این عبارت اینشان تصالی ناقل سنقال مجموع است تحضیب بخونیم یشون هم در اینجا ناقه سر کرده من از جلد بعد گم گومه جربه باشم. نه حالا الان من تا پیدا بکنم فبال علیه السلام لا بعث از امام سوال میکنه امام ایشون اشکال نداره. پس این نشون میده که این قاسم سیغلد اولا قومون و نه معلوم شد که اصلا یک تشکیلات واسعی داشته و این معلوم شد سر این که امام با این که اشیع از جوه نافداد با این همه الفاظ یا سیدنال ضرورت را جواب بینید این شبه این بوده که ارتباط با سلطه داره چقدر وقت عظمت این جواب برچن میشه یک جواب خیلی مختصر اجعل صوبند سلام هم بیان حکم واقعی هم آدم وقتی دقت میکنه میبینه امام چقدر با ذرافت بقیه رو هم جواب داده ولو ممکنه خودش نفهمه امس کردن حدیثی حدیثیست که این حدیث هم سنی و هم چیه به اصانید متعدده و اصانید صحیحه نه اینکه بقدر متعدده دیگه انسان اگر بگه تقریبا علم عرفی داریم به صدور این لفظ ام رسول الله به صلاح حالان متواصل لفظی بعید نیست که پیغمبر اکران در هیچ الویده شونه در شون حجت الویده زیادی بودن زیاد احادی زرد نستن در حجت الویده در نظر الله از کردم این کلمه نظره خود و علمای عدب هم قبل علمای حدیث اختلاف دارن هم نظره خونده شده هم نوره خونده شده با واد واد اختصار نه با واد نظره ولکن احتمالا بهترینش همون نظره علمه باشه. هم به علمه خونده شده هم به سیغه غربه خونده شده هم به سیغه فعله خونده شده چه جور قرارت شده نورالله من فکر میکنم به ارتکازات ذوق عربی خودم این بهتر باشه علایه نورالله هم خونده شده نورالله و امران سمع مقالتی آها صحبت من شنیده درک بکنه وعی یکی سمعه داریم روا داریم یکی معا داریم روای یعنی انسانی کلامی رو بفهمه نقل بکنه وعا یعنی درک بکنه همونی که ما ابن اسوش مشیخه هاش رو بفهمه من اگه بهم عرض کردم اولین کتابی که تقریبا هستن به عنوان کتاب در شؤون علم الحدیث در عالم اسلام به قول خودش در غیر شیعه نوشته شده کتابی صانعی که از علمای اهواز ابوالحسن رام هرموزیشون سنی البته اسم کتاب المحدث الفاصل فاصل درم برزی ها فازل نشد المحدث الفاصل بین راوی و وایی. این زرافت اسمی که تباید همینه ما دو جور داریم یکی راوی حدیثه یکی وایی حدیثه یعنی فقه حدیث و زرافت حدیث رو درمی کن قال رسول الله نذر الله و امره سمه مقالتی فرعاها فم بلغاها کما سمه هاها خیلی داره. اشتیاد خودش رو داخل میکنه. همون که من گفتم نه غلبه چرا؟ فرق به هامل فقهن اعلامانه افره همین. و روبه هامل فقهن اعلامن لیس به تغییر. اصلا این موضوع تقریبا بشه با تواتر لفظی بره. اساسا این دو اگر در مساجد ریشه بخوایم بیا اول جمله حدیث. که در اول در بحث حجه خبر ایشون آورده اصلا میشه آورده صحیح هم هست سنی هم دارن اونم صحیحه و لذا این مطلب همین عبارت ذرب المثل معروف کم تر کل اول و لالاخر هم حتش از اینه رب حامل فقهن الی من ليس بفقی رب حامل فقهن الی من هو افقهه ممکن خود قاسم سیقر از این روایت جواز خرید و فروش فهمیده ممکن بکونی خود عبال قاسم سیغل میگه امام گفته لباس ته عوض بکن یعنی بقیهش اشکال نمیده حالا اول قاسم سیغل که هیچی این تو تقیه بزارگوارم همیتون فرمیده که هم بقیه قاسم نداریم ممکن است فقیهی یا خود راوی هستن نه فقیه. خود راوی میگه امام به من گفته اشکال نداریم معامله درستی، این خیلی فروش درسته چون گفته فقط لباس ته عوض بکن برده. اما با این تحلیلی که من من ارز نه امام هم میخواستن حکموندار واقعی رو بگن هم شعون تغییر رو مراند کردن میدونن این آقا شیعه است اما شیعه که ارتباط داره با سلطه سیاسی اونم در چه بخشی؟ در بخش فروش اصله. الان شب در در ما کنم یک کسی که اصله دستشه و با سلطه سیاسی ما... از اون طرف هم جزه به اصطلاح جزء مخالفین نظامه. خیلی حساس دیگه. این خیلی حساسی دیگه با تلیه حساب کرد تصویر اول قاصر با این روایات من هندوز روایات اول قاصر نخوندم با این تصویری که ما از اول قاصر سیغل می کنیم که قومی هستند و ولدی دارند و بعد کارشون همین است و بعدم به سلطان خرید و فروش می کنن چهره این آقا تا آه حدودی تمام می شه امام چی جوری بود بفرند از این تعدیر جالبتر و مختصتر گفت جوابه الکلم ما اگه جای اول قصیم در اون زمان بودیم، آن هم خودش همیشه فهمیده. ایشون فهمیده که خوشش خیلی دفن شد من درست فکر میکنم دفن شده مشکل نداره. اما الان جیمیم خوب دقت میکنیم این جعل صبح به خاطر مجازاته. اگر مجاست آمد هم یعنی در باقی اثر نداره. پس اگر در باقی اثر نداشت، پس خیلی دفن شدن گزینه نیست. امام به جایی که یادموند روایات رو ناله، لاتن تفهیم نمیکته تفه به احباب ملا اثر اینجوری فرموده. حیثیت لسلا دقیقه فهمو بید؟ این روزی به حدیث این شخصه یعنی تقریبا جدید همه من نمخواه میخواد بعد از خوندن اعواد بیشونگه زرافت های خیلی خیلی ده خیلی دیر شما راجع به حدیث اول شد. برای اون شروع حدیث که کار کرد. این کارهای مختصری ای که بزرگان هم انجام میدن کافیه. در حقیقت ها ما تو احادیث زیادی این اعمال نظر که شده. چه عجایب درآمده. خیلی پیشتون فکر اینم وقتم که داد داشت جلب. یعنی مثل برای عمر قومینی واقع خویی هم منتظر این ظرافت می. خیلی ظرافت می‌خواد. ابوالقاسم سهل سیو خود به اون بزرگان ما هم ملت فکر نشده اینکه مراده ایمان که نجسه و نماز نخونه و اون خیلی خورشن جایز این اون جایز کرده انسان به هزار خلاف یک معنا دیگه دو تا معنای متناقض داشته این معادلی اج ال ماسوبان و این سلاحان اج سو سو آخر, آخر بله دیگه چون بگیر نه نصدی بی سی نماز بکن از یک لباسی خود از نکره در میان یه لباسی برای نمازت بکن یعنی یه لباسی که باش کار میکنی با پوست میزه خ... مثل کار میکنی و پردازش و یه نمازی هم بخون برای یه لباسی هم بر نماز و چی میفهمه میگنه خیلی دفرونی توشکال نداره؟ دا فقط مانعیت داره مخصوصا آیین ما که الان مانعیت با نجات ملاحظه کنیم راست ما ملاحظه نیست اما توجه نکردم اون تو توی موی گروهت که ملاحظه نمی نه تو لباس من لباس من که نواز درسته که حتی اگر آمد گفت مانعیت داره حتما نجاشه راه دیگه نداره پیش و ذرافات منتزری گفت؟ گفتم من دو تا چی گفتم؟ جهالت سراسر شد. مستر به؟ آخ خویی که مستر نیست، آخ خویی نه، خویی که مستر نیست. اون فهمیدن که درست، شخری کرد ما درست. نه از ها رو امام امم ذرافات‌ها رو باید عجیب شد. امام خیلی عجیبه، امام حدیث. چقدر با ذرافات یک جواب اینجوری بده؟ که تمام مطالع واقعی هم حرص میشه خیمن بر اکتر من یک کلامی رو بیگر ولو شما نفهمی نه رو گفت این بدی ها میفرمن چیزی دریزه سروبه ها میلسه این ایلا منه ها افقه من در ال... رو بست بفهم امام حجت رو تمام کرده در رو بفهم با قطعا فرب نهام لتقن اعلامه او اعظم اصلا ائمه علیهم السلام همین راه اشاره که بعدی میاد بهتر از شما میتاس یه روایت معروف هست که آخر زمان علما اینان انداز سجاد در قوله الله آحد معانی هست که Polit beiden آفردان میشون این شبها را ش هم دارم که چرامه سردی اول حدیث صوره ع��ات نه نه خود قوله الله بله بله اون روایت بر زن آفال اول در خود قوله الله اصلاحل بید های آفردان که بله. ها صریعا میشه خوبش مجمر به نظر من باقی زرافت ها چه به ذکرات رو خونیم خیلی واضح اشان معنا رو عوض کرد حالا شیخ میگه تقریر ظهور نداره اصلا بحث تقریر نمی رسی امام مخواهد بیگه اصلا باطله اون دباقی و مباقی ها با چون این رو معارم دیاره اصلا یا این رو میگه امد روایه دیگه میگه میشه استفاده کن روایه دیگه میشه استفاده نظر روایه دیگه میشه استفاده کن پس کردن آن سال فرمون یه سآل جواب دادم در فتاوای اهل سنت هست در روایت شیعه در مثل توحفل هست اما توحفل در پیش ما ثابت نشده بعدها رسول فتاوای ما هست اما این فتاوا بعده اما این روایت نه در روایت ما نه <تصفيق> اگر روایت داشتید که مشکل نداشت <تصفيق> این هم یکی از نوارده اما خصوص میته که دنبال ملازمه چون در روایت علیسان الله حرم میته. دیگونه که دارم میگوش حرم سمن میته. اونو دارم ما هم سمن میته من از صحت داریم میته و خصوص که داریم جند فقط اشک سر این ملازمه نبوده به سر این بوده که جند میته به خصوص برای اثر دبامی حاک میشه یا نمیشه؟ این پوست میته در اثر زنبان این دوست مخاطب که پاک نمیشه آنه چجوری دید؟ علم اقوف مخاطب دید رو درگیاریم به قطعه این کار یعنی امام یک جور یاده که اگر این نامن توسطی اینها آقا چون الان هم زمان ما تصور بکنیم که کسی که تدفروش سلاح رو با دولت با اهده میگیره بعد هم یک مخالبین دولت خیلی کار میگیره سنگی میگی نیمه اینه اف چون از اونور با دولت رابطه سلاح داره از اونورم مخلد از امام هادی امام هادی هم چی زندان چندی نظر و تحت نظرام یک کسی که بخواد بگه هم با خلیفه اصلاح کرده فهمیش میکنه خب مثلا حساسیه سلاح دولت همیشه استراتیجیه است. و در این حال هم با اون زندانی خلیفه مورد زندانی خلیفه است دنبال خط مخالف اپوزیسیونه این تصویرش مشکل. از این جواب امام در تفسیر میتونید تصور که با یک کلمه اینطور ذریع فلطی مخالیم زیاد رو دست هر کم بیوفته هر کسی یه جور می فهمه مشکل نداره با قول شعر اون هر کسی از درن خود بیاره. از در درون من نجسته اون این تماقضی در بایدار رو در بایدار دیگری ما از اهمه داریم سراوردن که دباغی پاک نمی کن. این معارض نیست آن ای ای <Basal>, <د Touch marché> این معارض نبیدی آفهد مشکلی که معارض که ما معارض چکار کار که معارض نیدیم پهسته هم های بله این متناقض البته این معدی شده به این مسئله هرمونسی که نفی دلالت که نه این ملازمه با نفی دلالت نداره مل... نفی در